بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين أما بعد سيومين درس الزروس شمائل رسول الله عليه الصلاة والسلام تاليف إمام الترمذي رحمه الله واسكنه فسيحة جناته سيوهاشتومين باب باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر اون چیزی که از سخنان رسول الله صلی الله علیه و وسلم در مورد شب نشینی اومده نشبیداری با تهجد با نماز و طاعت درباره شب نشینی چه فرمودن رسول الله علیه الصلاه و السلام در مورد شب نشینی شب نشینی پای تلویزیون پای برق پای صحبت و تفریح و وغزای کردن خصوصا یعنی به وقتش اومد این باب با اون چیزی که در تفسیر سعدی میخونیم در مورد داوود علیه الصلاه و السلام در سوره صاد و مدحی که الله جل وعلا نسبت بهش داره شیخ رحمان سعدی خیلی فواید جالبی داره نقطه های قشنگی داره هر از گاهی در بعضی از سوره ها مثل سوره یوسف علیه الصلاه و السلام اخر سوره مثلا مهمترین درس ها رو میگه در بحث موسی و خزرم هم همینطور انتهای سوره بحث خلاصه آداب طالب علم رو یاد میکنه درسایی که از قصه موسا گرفته میشه و در بحث داوود علیه الصلاه و السلام که در سوره صادر بحث عبادت و طاعت را میکنه و جایگاهش نزد الله جل وعلا خصوصا چنانچه در احادیث صحیح درم رسول الله علیه و السلام مدح میکنه داوود علیه الصلاه و السلام اینکه شب داشت با ذکر یاد الله جل وعلا و تهجد و با اون روزه‌ای که یک روز میگرفت یه روز نمیگرفت بهترین عبادت را اینجوری وصف میکنه رسول الله علیه السلام از عبادت داوود علیه الصلاه و السلام چون هدف از خلقت آفریدنش امینه یعنی انسان آفریده شده برای عبادت و اطاعت نه برای ول چرخیدن و وقزایه کردن و حدردادن اون عمری که الله جل و علا روز قیامت از اون عمر سوال میپرسه چه کار کردی با اون عمرت؟ اون زمانی که بهت داده شد که در دنیا نفس بکشی و بری و بیای خصوصا زمانی که شب نشینی میشه معمولا صبح شخص به خواب میره اون نمازی که از وصف منافقین رسول الله صلی الله علیه سلم یاد میکنه که منافق اون کسی که این نماز را نخونه شخص وصف نفاق را به خودش میگیره منافق اون کسی که در صف نماز زبان صبح نباشه در جمع و جماعت خیلی سخته خیلی سخته انسان با نفاق از دنیا بره شب نشستی صبح نماز صبح خواب رفتی کی مقصر خودت مقصری خصنی که شیخ بن باز رحم الله میگه اگر اون شب نشینید با لهو و وقت و تلف کردی یک دو شب خوابیدی نماز صبح هم ساعت گذاشتی ولی میدونی که بیدار نمیشی کارتت که بیدار نشی یعنی این چیزی نیست که مثلا بفرض بگیم یک بار تو عمرت این این این حادثه بردت رخ بده نه کار همیشه گیته شیخ باز رحمه الله میگه این شخص کافره مرتده با کفر اکبر از دنیا رفته شخصی که از عمد نماز صبح خواب بیفته شب را بشینه تا نصف شب بیدار نماز صبح ساعتش هم زنگ بخوره بیدار نشه مقصر که خودش شب تا نصف شب نشسته شب نشینی گرده با دوست با رفیق جلو تلویزیون بازی نمازی که برای اون خلقت شده اون نمازی که فقط منافقین هن که ازش تخلف میکنن خواب رفته از اون نماز این هست که نباد به شوخی گرفت حسین این حدیث و این توصیح های رسول الله علیه الصلاه و السلام امام راحه الله میگه میگه که نماز صبح و بعد از نماز صبح بیدار موندن مثل جوونی که تو نگهش داری برای خودت اما شب و خصوصا شامگاه همه کس بیداره همه کس تو اون وقت بروی برای خودش داره اون وقت که پیران درش زندن نه وقت جوانی جوان شادابیش زرنگیش به اول وقته و رسول الله صلی الله علیه سلم میگه برکتی این امت هم در اول وقته صبح خب شخصی اون جوانیش رفته به خواب صبح فقط خوابه شبابی بیداره. خب این از خیر و برکتی که الله جل و علیه بذاشته برای این امت این شخص خودشو محروم کرده از اون خیر و برکت. ديبيسو دومين دو حديث إمام الترمذي رحمه الله مقياد حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو عقيل الثقفي عبد الله بن عقيل عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نساءه حديثا فقالت امرأة منهن كأن الحديث حديث خرافة فقال صلى الله عليه وسلم أتدرون ما خرافة إن خرافة كان رجلا من عذرة أسرته الجن في الجاهلية فمكث فيهم دهرا ثم ردوه إلى الإنسي فكان يحدث الناس بما رأى فيهم من الأعاجيب فقال الناس حديث خرافة حديث ضعيف مجالد ابن سعید و غیر توی اسنادن که شيخ هم تضعيف میکنين روایت بعد شاهدش هم اینه که عمر بن عاص رضي میگه شبی رسول الله و سلم نشاسی بود با همسرانش با همسرانش یکی از وجوه جایز بودن نشاست انسانه با همسر خودش بشینه مشکلی نداره حالا میاد چه جههای استثناء کرده رسول الله علیه الصلاه و السلام از اون شب نشینی نشسته بود رسول الله صلی السلام شب با همسرانش زنی از اون همسران رسول الله علیه و السلام میگه اسمشو یاد نمیکنم اون عایشه انگار که سخن سخن خرافه‌ای هست سخنه خرافه‌ای هست رسول الله علیه الصلاه و السلام پیشو نگاه میکنه بعد میگه که میدونن اصلا خرافه چیه خرافه کی بوده خرافه مردی بوده از قبیله ازره یمن که جنیان میان اسیرش میکنن مدتی نظر جنیان اسیر میشه بعد بر میگرده بیشه قومش از انس و اون چیزهایی که از چیزهای عجیب و غریبی دیده بود نزد جنیان اومده بود به قومش میگفت بعد از اون این اصطلاح جا افتاد میگفتن حدیث و خرافه این خرافه هست حالا امروزه اطلاق خرافه یا خرافات به چیزهای مندر و بردی گفته میشه چیزهای من که اساسی نداره و بر سر زبانها افتاده از اون خرافات هایی که مخالف شرعه خب گفتیم ولی اینجا ربطی به حدیث نداره اون خرافاتی که پیش خودمون هست با این مسئله که اینجا یاد شد رسول علیہ السلام میگه خرافه اسم یک شخصیه خب حدیثش ضیفه و حتی متنشم خیلی ها ازش ایراد گرفتن حالا قبل از این که بریم به حديثة المزارع, حديثة حديث مزارع، حديث خلال تنونية كل وقت امشاب اممي ربون حديث فقط من چند حديث رب بغم اين حديث زيفوت حديث ديگري هست در در بحث شب نشيني از جمعه انا حديث حديث عروف ابن الزبير دارم رضي الله عنهما قال سمعتني عائشة رضي الله عنها شابي امم عائشة رضي الله عنها شنيت كمان درم سمعتني عائشة رضي الله عنها شنيت كمان درم صحبات میکنم يعني وانا اتكلم بعد العشاء الاخرة بعد از شب. دارم صحبت میکنم فقالت یا عری یا نهرش میکنه دعواش میکنه با صدای بلند صداش میزنه الا کاتبک اون ان که مسئول نوشتنته راحت نمیکنه یک ذره که اونا چیزی ننویسم برات الا توریح كاتبك از بابت انکار نکوهش فان رسول الله صلی الله علیه و سلم لم يكن ينام قبلها ولا يتحدث بعدها رسول الله صلی الله علیه و سلم قبل از نماز عشا نمیخوابید و بعد از نماز ها حرف نمی زدند، بلکه نه کردن رسول الله علیه و سلم هم با سخنش، از خوابیدن بعد از نماز مغرب و عف زدن و سخن گفتم بعد از نماز عشا حدیث دیگر هم داریم در همین معنا هست این حدیث را ابن حبار روایت کرده حدیث دیگر هم بازم البانی هم تأییدش میکنه حدیث اوروی رضی الله عنه که میگوید که همین حرفو میزنه میگه شستم و بعد از عشا صحبت کردم و میعشا شنید خالم بود و منم تو یک خونه بودم باهاش تو یک اتاق سقفمون به هم دیگه بست بود و قالت یا اوروه یا یا عریه س داش میزنه با نامش عروه یا همون مثل حدیث قبل عوری یا عوریه ما هذا السمر انشنيش این چیه انی ما رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم نائما قبل هذه الصلاه ولا متحدثا بعدها ان دين رسول الله صلی علیه و سلم قبل از این نماز نماز عشا بخوابه و نه بعد از این نماز صحبت بکنه اما نائما من او مصليا فيغنم یا میخوابید سالم میمون از اون حرف زدنی که نباید حرف میزد و یا اینکه غنیمت میشورد غنیمت میبرد با اون نماز تهجدش نماز شبش هر جمله احادیثی که داریم در این باب حدیث عبدالله بن مسعود رضی الله عنه داریم که میگوید جذب لنا رسول الله صلی الله عليه وسلم سمر بعد العشاء ابن ماجه رحمه الله میگه یعنی زجرنا عنه نهانا عنه صلی الله عليه وسلم رسول الله علیه و سلام شب نشینی مرا من کرده نهی کرده بعد از نماز عشاء جذب لنا یعنی با توندی مرا من کرده شب نشینی بعد از نماز عشاء. أعزهم لها حادث كدريم حديث عمران بن حسين رضي الله عنه عنكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عامة ليله عن بني إسرائيل لا يقوم إلا لعظم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم جلسي علم لاش بعد سلم أزعيش من شاس بما بلان نمشد مقار بري نماز مقار بري نماز إلا لعظم صلاة بري نماز نماز تهجد غير رسول الله عليه وسلم حلق علم را توقف مكادا البني رحمه الله الأساس لي سئيه حديث شمورية سه زارب السبانج. مقوء علم أن السمر وهو التحدث في الليل شاب نشيني. منهي عن مانع شو دي مزش نهي شو دي مزش في غير ما حديث عنه صلى الله عليه وسلم إلا إنك يكون حديث حديث الله صلى الله عليه وسلم بشا يا تفسير قراني بشي ميجي ولذلك ترجمت لجوازه في العلم بهذا الحديث وغتر هاي ميجي كي ان عنوان إنك إن ان حديث دلالات بر ان ميده مذاكره علمي بشي مشكلي نيست رخصته ولذلك فما عليه جماهير الناس اليوم من السمر وراء التلفاز وامثله هو من الفتن التي أصابت العالم الاسلامي ميجي اجمل فتنه هيك انروز و اینا که امسالش هست شب شب میکنم مردم مینشینن و ال آخر که یک فتنه ای هست که همه مردم بهش مبتلا شدن و فتنه است رسول الله صلی الله علیه و سلم نهیش کردن با فرمودش اش لا سمرا الا لمصلن او مسافر شبنشینی درست اسم مگر برای مسافر یا کسی که میخواد نماز بخونه البته این حدیثش خواهد اومده از حدیث عبدالله بن مسعود از اون حدیثی که داریم صحیح در این باب حدیث عمر بن خطاب رضی داریم كان رسول الله صلی الله علیہ وسلم یسمر معای بکرم من امر المسلمین و معهما گاهی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم شب نشینیمی که بخاطر امری از امور مسلمین جهادی یک حاجتی از امر مسلمین بود که بخاطر الدین دور هم جمع بشیم و من باهاشون باشم یعنی رسول الله صلی او علیه و و عمر نه اینکه بیان وقت تلف بکنن وقتشون هدار هدر بدن بعد ترمیزی هم میگه رحم الله میگه ورخص بعضهم اذا كان في معنی العلم درهمی معنا اگر برای مذاکره علم باشه بعض از علما رخصت دادن اجازه دادن یعنی اصر شب حرامه رخصت برای مذاکره علم و معلب بده منه من الحواجی برای حاجتایی که ضروریه میگه و اکثر الحديث علی الرخصه وأكثر الحديث على الرخصة بيشترى حديثكم هذا بالرخصة قدر ويعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سمر إلا لمصلين او مسافر هم الحديث قال الباني بشاشاره مكن درس ليس كسي شبنشيني مكن اذا بخاد نماز بخونه يا مسافرتی داشته باشه همجيني از عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دارين كمی قد الرسول صلى الله عليه وسلم فرمودن لا سمر الا لرجل او لاحد رجل شابنشيني درستيس مگر براي دو نفر دو مردي لمصلين او لمسافر حديث المصاد محمد صحيحه كسي كي ميخاد نماز بخونه يا مسافرت بره شبنشيني براش مشكلي نداره يشقال آخرين حديثي كي دارهم حديثة من عائشة هاس وزام صحيحة كي لا سمر إلا لثلاثة شاب نشيني دروس نسمك بسنفار مصلين أو مسافر أو عروس کسی که میخواد نماز بخونه یا مسافر یا کسی که شب میخواد با همسرانش باشه چنانچه در اون حدیث داشتیم از حدیث شمایله رسول الله علیه الصلاه و السلام 252مین حدیثی که اینجا ما ترمذی رحم الله یاد میکنه هرچند حدیثش ضعیف بود ولی خب اینجا این حدیث داریم شخصی با همسرش میخواد بشینی مشکلی نیست یا میخواد نماز بخونه برای طاعتی عبادتی برای نشر علمی مذاکره علم اینها استثناء هستن از اون جمله هایی که رخصت شدن گفتیم نهی رسول الله علیه و السلام هم صریح در این باب لا سمر یعنی سمر شب نشینی درست نیست حرامه و همونطور که گفتیم البانی و ترمذی هم یاد می بعد از اون احادیث که اون شب هایی که یاد شده رخصتا هستن رخصت بعد از حرام یاد یعنی رخصت مثل زدن زنها در عروسی خب دف زدن حرام مگر در عروسی مگر در شادی این رخصت شده نماز قصر خوندن چه موقع رخصت در سفر رفتی مسافرت درسته که تو نمازت قصد بخونی ولی خب اگر تو شهر بودی کرد نماز خوندی زور درسته نه حرامه باطل نمازه شب نشینیم هم همینطور برای مسافر رخصت هست ولی برای کسی که مقیمه نه مثل اون نمازی که من گفتم أما آخر حديث مشابه من خلال تولانية دبسو بانجو السبومين حديث الترمذي رحمه الله مقويات حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أخيه عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت جلست إحدى عشرة امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا أن يكتمن من اخبار أزواجهن شيئا إن حديث صحيح تولانية من نم كل ما, ما تنشلون جون میخونم و شرحش میدم و اون 11 زنی که شب نشستن اینجا اون نواشی میگه 11 زن نشستن عهد بستن پیمان بستن که بشینن هر کدوم از شوهر خودش یه چیزی بگه آلا یا به خوبی یا بدی عهد بستن که چیزم کتمان نکنن هر کسی هر چیزی در مورد شوهرش میدونه بگه زنا رحمتا اینجا دارم بهمون یاد میدن که مرد خوب چه مردی یا انسان بره همون مرد خوب باشه و رسول الله علیه و سلم نفر کدوم یکی را انتخاب میکنم برای خودش و برای همسرش کدوم یک از اینها هم زن هم مرد کدام یک بهترین بودند چون انتهای حدیث هم میاد رسول الله صلی الله علیه و میگه به امه عشه کنت لکی کبی زرع لام زرع منم برای تو از جمله 11 نفر ابو زرع بود با ام زرع حدیث در بخاری مسلمین حدیث صحیحه از لازم اسناد هیچ مشکلی نداره و قاضی عیاض رحمه الله کتابی داره با اسم بغیت الرائد لما تضمنه حديث ام و من الفوائد یک کتاب داره فقط تصنیفش در فوائد این حدیث یک کتاب خاص ابن حجر میاد در فتح الباری گوشه از فوائد را در کتابش بر سهی بخاری یاد میکنه که الام ما اینجا هم خلاصه از کنارش رد میشیم که زیاد طولانینش خب بریم به اولین زن اولین زن درباره باره شوهرش چی گفت و هر کدوم از شما زناتون چه تصوری درباره شما دارند دیگه خودتون همون تصور خودتون بیاری اون ذهنیتی که خانومتون در مورد شما داره به اینجا تطبیق بدی در این یاد ذهن فر اولین زن فقالت زوجی لحم جمل غفن على رأس جبل وعر لا سهل فیرتقا ولا سمین فينتقل. اولی شوهرشو بس به گشت شطور میکنه گوشت خوش کم اونم گوشت شطور لاغر اونم از بر سر کوه که به سختی دست طرفم به اون کوه میرسه نگوشت نرم نگوشت گوشت بره گوشت شطور سفت خشک اونم شطور لاغر مردنی گوشتش هم گمن خب چه وجه تشبیهه؟ یعنی شما ذهنیت این زن تصور این زن رو شما داشته باشید یعنی چی میخواد بگه تعریف خودشو شوهرش بکنه یا... یا داره به بدی ازش یاد میکنه نه نه نه داره بدیش میگه تعریف داره میکنه خب تعریف کجاست زوجی لحم اول شوهرشو بس میکنه به گوشت چه گوشتی؟ جمل، گوشت شتور غف، یعنی کم، کم فایده و گوشتی که هزیله، یعنی گوشتی که نرم و خوش نیست بعد این گوشت که خودشم بیارزش از بیارزش اشتره یاد میکنه کجاست؟ علا رأس جبل، بر سر کوه، بالا، بالا رفتن اون کوه خیلی شاقه، خیلی سخته یعنی این مرد به هیچی رازی نمیشه، دست بهش نمیرسه اگر هم دست بهش رسید تونسی قانعش هم بکنی تو یک مسئله کوچیکی یعنی این شوهر عرضش وقت تلف کردن نداره چون اگر وقتت هم تلف بکنی این همه روان بالای کو هم بری آخر چیزی گیرت نمیاد بخیله على رأس جبل الوعر پر پیچ و خام سخت، دشوار راه کوه، سخت یعنی این مرد خیلی سخته لا سهلن فی ارتقانه این کوه راحته که بری بالاشن این مرده نه راحته که تو باش حرف بزنی حرفتو بزنی تحملتو داره نمیتونی باش حرف بزنی و نه هم چیز از دستش در میاد سهل نیست آسان نیست سخته ولا سمین فی و نه هم پربحاست یعنی چیزی توش هست یعنی کرم داره بخشش داره چیزی هم بهت بده از اون مال از اون چیزی که تو تمنناش داری ولی هستم اینه یعنی با ارزش هم نیست یعنی که تو حالا برایش زحمت بکشی وقتت برایش بذاری حالا اینجا گفتم از مذمت داره یاد میکنه یعنی که این شوهر خوبیش در حق اون زن کمه و اخلاقش تنده و نشست و برخواستش سخته به خاطر غلظتش، به خاطر و به خاطر و تند چون خشک تشبیهش میکنه گوشه شطوره خشکه من شتور لاغری که چربی هم نداره ارزش هم نداره اما دومی قالت ثانیه زوجی لا ابو ثخبر اني اخافو الله ان اذره انذكره اذكره عجره و بجره این زن میگه شوهر من از بس که ابداره داره اگر بخوام درش رو باز بکنم حرفم تموم نمیشه از ای باش. باید سیر تا پیازش خود خودم بگم. حجره و بجره یعنی از همه چیزش باید بگم. فقط همین قد بگم کافیه. که اگر حرف از ای باش بزنم از بدیهاش تموم نمیشه. این اصطلاحه اصلا از عربا میگن حجره و بجره. حجره میگن که همون یک قسمتی از رگ گردنه و بجرم به ناف گفته میشه. یک قسمتی از ناف از داخل میشه خودم سیر تا یعنی همه چیزش هر چیزش بخوام بگم از هر کدوم از هر گوشه ای از معایبش بخوام بگم تمون نمیشه خبرش نمیگم زوجی لا ابوث خبرای نمیگم خبرش معایبش رو بهتون انی اخاف الا ان اذره یعنی اگر بخوام درشو باز بکنم خیلی صحبت طولانی میشه نمیخوام درشو باز بکنم که دیگه صحبت تمون نشه ولش بکنید ارزش نداره بود و نبودش یکیه هیچ سودی منفعتی توش نیست خب اولی گوشت خشکی گوشت بود ولی خشک این دومی که اصلا هیچی نیست بریم به سومی قالت الثالثه زوجی العشنق این انطق اطلق و این اسکت اعلق با ترس اومد این زن شوهر من دراز بیخاسیت عشنق کسی که درازه ولی خب عقلش کار نمیکنه. دراز درازه ولی عقلش کار نمیکنه. کنه این انطق حرفی بخوام بزنم به زبان بیارم طلاقم می ده تحمل هیچی نداره تلاقش کار نمیکنه. و این اسکت اگر هم ساکت بشم منم هم بشم معلق قهر میکنه میره بیرون از خونه طلاق هم نمیده که برم شوهر دیگه بگیرم معلق من رو باقی میذاره پس باید مدارا بکنم این شوهر در این وصفه این زنم بازم مزمون بی حوصله عقلش هم کار نمیکنه زنم هم دست از پا خطا بکنه طلاقش شوهرش میده این وصفه مرد ثومی بی سبر و حوصله. اما چارمی قلت رابعه زوجی کلیل تحامه الله اکبر به کوی تشبیح میکنه کوی تحامه طرف یمنه از مکه میره به طرف یمن شبش خیلی خونکه شبش خونکه گر نیست سردم نیست خونکه معتدله میگه همسر من مثل شب تحامه از کوی تحامه خونک نه گرم نه سر تو همه تصرفاتش معتدله آرومه ولا مخافه یعنی من ترسی ازشم ندارم نمی ترسم ازش به خاطر اینکه نرم و خوشرده سامه ساما ساما ملل یعنی شوهر من ملولم نیست خسته نمیشه از حرف زدن به خاطر اون اعتدالی که داره میشینه قشنگ حوصله داره حرف منو گوش میده سیناش بازه به حرف حدیث به سخن این مدح کرد ولی خب خیلی خلاصه شوهرشو به خوبی یاد کرد هنک و خونسرد مدح کرد پنجمی حالت الخامسه زوجی ان دخل فهیده و ان خرج سییده ولا یألوعمما هیده حالا این هم به خوبی گرفته شده هم بدی شوهر من میگه این زن پنجمی وقتی که وارد خونه میشه مثل یوسبللنگ کرم داره چطور مثلا وقتی که میره سیدی را شکار میکنه میاد دور بر بچه هاش میشینه و به جای که خودش بخوره به بچه هاش میده بعضی ها اینطوری تعبیرش کردن شوهر من مثل ببر هم یوسپلنگ بلنگ بعضی ها به مزمت شموردنش شوهر من وقتی که وارد میشه مثل فهده یا همون یوسپلنگه یا پلنگ میره بیرون سیر میخوره وقتی خونه میاد بخواد بخوابه. با دوست رفیقش خوشه ولی وقتی که بازن بچهش میاد میخواد کنار بازن بچهش فقط بخوابه. هوتله گرایه کرده میخواد بخوابه بس. بعضی این وجرا گرفتن به مزمت و این خرجه اسیده زمانی که بیرون میره شیره ولی قسمت اولی به منظمت گرفتن و بعضی هم به خوبی و قسمت بعدی را به خوبی هر دوتا گرفتن گفتن که یعنی اگر بیرون بره مثل شیر درنده هست شجاعه کار میکنه بیکمر نیست بیکمر نیست بلکه کار میکنه زحمت میکشه ولا لا عما اما عهده و لا يسألو اما عهده یعنی در مقابل خونداری همسرم از بسک بخشش داره هیچ وقت گلایی نمی کنه به خل امروزی گیر و ایراد نمیگیره از همسرش تو را چرا این کارو کردی چرا این کارو نکردی چرا تلویزیون روشنه چرا این چرا خاموش نکردی چرا نمیدونم این اجاق گاز روشنه چرا نمیدنم آب این حموم چرا اینجا آب ریخته چرا اینجا فرش کثیفه خیلی از مدح هستن اینطوری انا فقط تو خونه نشستن بازی خالصانه رو انداختن فقط ایب و میگیرن از زنشون این زن داره مدح میکنه این قسمت میگه که شوهر من از اون شوهران نیست که تو خونه بیاد، ای بوی رات بگیره از کارها، از زندگیم حالا بیشتر اینطوری حملش کردن یعنی از بس که بخشش داره به روش نمیاره و گذشت داره در مقابل همسرش. تو بعضی ها گفتن که نه، گفتن که والله یصل معهد یعنی اینکه نمیاد در مقابل اون زندگیش که متعهد بوده نمیاد بگه به ای زن تو چی کم داری، تو خونه چی کم نداری. بعضیا گفتن بعدی گرفتن و بعضیا به خوبی این حدیث رو کردن. این یعنی قسمت الخوا به خوبی بهتره یعنی پلنگ شیره و متعهده و گذشت داره در مقابل همسرش این وصف پنجومین شوهر اما شیشومین قالت السادسه زوجی این اكل لفه اینجا دیگه ببخشید اینجا دیگه به مزمت داره یاد میکنه و بدی داره یاد میکنه هم مغم شوهر من شکم میشه میخواد فقط بخوره و زیر لحاف بخوابه فقط پتروی خودش بندازه فقط بخوره و بخوابه این اكل لفه غذا جلوش جل هیچ برای باقی نمیذاره میخوره و شریبه اشتفه اگر هم چیزی نوشیدنی نوشی برای شو بردی چیزی باقی نمیذاره از بس که میخوره و نتجعل تفه وقتی که میخوابم دیگه خوابید که رفت خواب خاله خرسه میکنه دیگه بیدارم نمیشه از کسی سراغم نمیگره توپم بترکنید بس گوشش بیدار نمیشه خوابش هم سنگی و نتجعل تفه و لا یول جل کفه لیعلم البثه اصلا وقتی که سرشو زیر پتو میکنه انگار که زنشم هم کنارش هم نیست اصلا همسری نداره نه معانستی نه ای هیچ انگار که تنه درختی کنارش خوابیده یعنی بی احساس نه احساس داره نه شهوت داره هیچی نداره این مرد فقط بخوره و بخوابه قالت السابعه بریم هفته زوج زوجی عیای كل کلو دائن لهو دا چجکی او فلکی او جمع كلا لکی زوجی عیای از عیمیات همسر من شوهر من شره و گفته شده غیای از غیه یعنی به هیچ سراتی مستقیم نمیشه شر محص طباقه احمقه کل خراب بقل امروزی کل اشکار نمی کنه کل دا الهو هر بدی شما به ذهنتو میرسه از یک مرد توی این مرد من هست شوهر من هست اونو کلیت هم میتوه داره وسپش میره شجکی او فلکی از یه طرف میزنه کلت و او فلکی می از یه طرف هم میزنه به تن شوتو لگد یا به سرت خورده یا به شکمه از هر طرفت خورده هم دیگه ردخور نداره گاهی میزنه سرتو زخمی میکنه گاهی دست و پات و جمع کلن لکی یا اینکه هم نه سری باید گذاشته نتنی همه مجروحی از بالا سر تو پایین با... از بس کتک میخوره این زن میگه هر شری تو این شوهر من هست حالا معمولا هم زن ی زبان دراز، حال روزشون اینه و بعضی ازم زبان درازی میکنن از زنها به خاطر اینکه حتی راضین کتک بخورنا شوهر دارشون بزنه ولی دلش به زن دیگه نشه یعنی ازم میان شوهر را زیر عذاب میذارن که شوهر کتکشون بزنه تا اون شوهر عذاب وجدان بگیره بیادم از بکنه و این فیلم و داستان هر روز بر سر شوهرش در میاره خوششم میاد فیلم نکنه خوشش, خوشش نمیاد خوشش میاد کتک بخوره فیلم هدفش هم یه چیزیه شوهره دلش به دیگه نشه زن دیگه نگیره. اما هشتمی قالت ثامینه هشتمی میگه درباره شوهرش المس و مسو نین این قد شوهرم لطیف انگار خرگوش پاک تمیز و ریح و ریح و ذرنوی بوش قدر عد به خودش میزنه این قدر پاک تمیز خوشب هست انگار که سر و تکستانی گفته شده یا همون یک اللف بوی خوشی داره میگن بهش پای ملاخ یا همون رجل جراد بهش میگن خوشبو حسنیه از بس که بوش خوشه انگار ذره نبه یعنی خیلی معامله خوبه با رفتارش با من خوبه به پاکی ازش مدح میکنه پاک تمیز مثل خرگوش از گوشتش چطور شروع شد رسیدیم به خرگوش دیگه چند تا مونده سه تا نهمی قالت التاسعه زوجی رفیع العماد نهمی میگه همسر من شوهر من رفیع العماد رفیع العماد معمون به کسی گفته میشه در لغت عرب که خیمه زده برای مهموناش بلند برای استقبال از مهموناش برای استقبال از اون کسانی که اومدن به دیدارش و مهمونی میده طویل و نجات نجات شمشیره شمشیر بلندم کسی استفاده میکنه خودشم بلند باشه میگه شوهرم قد هم نیست قدشم بلنده میخواد وست به شجاعتش بکنه یعنی یک شخص کریم سخاوتمند شجاعه بزدل نیست شجاعت داره عظی عظیم و رماد رماد ممونن خاکستر هرچه غذا بیشتر بپذی خاکسترها هم بیشتر میشن می خیلی خاکسترایی که تو خونه هست برای پخت و پز غذا برای مهمونه هم خیلی زیاده یعنی اینقدر پخت و پز میشه که خیلی خاکستر جمع شده تو خونش از بسک مهمون نوازه خونش هم وسط مردم قرار داده تا هر کسی اومد صداش بزنه بفرما پیش ما. برای نهار یا برای شام تو هر کسی هم از اونجا رد میشه دعوتش بکنه توی اون مجلسش محفلش که باهاش سر سفره باشه این از کرمش و شجاعتش و هنرش یاد کرد اما دهمی حالت العاشره زوجی مالک و ما مالک وما مالک خیر من ذلك له ابل کثیرات المبارکی قلیلات المساریح اذا سمعنا صوت المزهري ايقنا انهن انهون هوالیکو ده همین زن میگه شوهر من تاجر تاجر خیلی پول داره ملک و منالش زیاده میدون ملکش چیه خیر و مندالک یعنی اون چیزی که از خوبی تو ذهنت میاد هر چیزی که فکر میکنید يعني از اون زن قبلی نهمی بیشتر يعني اونجا گفت که مثلا اگر شوهرم مهمون نوازه و شجاعت داره میه خب کسی مهمون نوازی میکنه که دارایی داشته باشه میگه دارایی شوهر من دیگه اونجایی که فکر میکنی دارایی داره هر ثروتی که تو ذهنت خطور بکنه فکر میکنی شوهرم داره خیرش زیاده له ابلون کثیرات از جمله خیلی شطور داره المبارک اون هم که دیگه بستان یعنی نرفته که تو صحرا بگذاره از اون شطورایی که زیاد داره قلیلات المسارح کم به چرا را چرا اذا سمعنا صوت المزهري ايقن ان انهن يعني یعنی شترا رو بسته نگذاشته که بره تو چراگاه به خاطر اینکه هرگاه گاه مهمونی اومد شتور براشو سر بزنه نه بوز نه گوسه مثل قبلی نه این برا مهمونا شتور فقط بسته کنار خودش که هر گاه مهمونی اومد صدای تبلی برپا بکنن که اون حتی شتورا هم احساس بکنن صدای مزهر نوع تبلی میزدن زمانی که این صدا را شتورا میشنیدن دیگه میدوننن که چی که دیگه کان نوایشون رسیده برای زلف شودان. ای قلنا انا هنها هواالکو. یقین دیگه پیدا که دامون شو تراک دیگه وقت زلف بشن. اما آخری یا که رسول الله صلّى الله عليه و سلم می‌فرمایند با امین عایشه من برای تو مثل ابو برای امو زرع برای آموزاره. تو مزار امو ایمان ابو زرع خلا ابو زرع و مزار هکیان. اول بالدکاب شروع شد. مثل اون اونا که شروع کرد یکی گفت خرگوش، یکی گفت پلنگویی، یز پلنگ و شیر و یکی گفت گوشت شد هر کدام یک واسپی کرد. اینجا این زن به عنوان یک شخص کشاورز، یک باغبان داره از شوهر یاد میکنه. زوجی ابو زر. شوهرم فقط میکاره از خوبی. چون کسی که میکاره درخت سبزه است برای میبشت و برای برداشت اینا میکاره. شوهر من باغبانه. فقط خوبی میکاره. هرچند که این زن، حالا بعدا تو ادامه قصه داستان خواهد اومد که این زن است. از یعنی این شوهرش، طلاقش داده ولی با این وجود بعد از طلاق داره این شوهرش شوهرشو داره میکنه چرا الان میاد تو نام قصه خب یاد میکنه از شوهرش به عنوان یک باغبانه که فقط خوبی میکاره با همه خوبه چه با مهمان چه با همسر چه با فرزند چه با مادر دوست رفیق با همه خوبه اونا خودسن نهمی و دهمی شما داشتید به عنوان نوازی و شجاعت این زن از اول همونجا شروع میکنه. یک شخص تمبل نیست. باغبان زحمتکشه شوهرم یک کار میکنه و ما ابوذر میدونید این باغبان این ابوذر کیه داره آمادگی میده ذهنیت میده برای شوهر انا اسمن حلی اذنيه انا اس انا میاد نو سمیات چیزی که حرکتش معتدله یعنی پر از صلا کرده طلا بر گوشم کرده گوشام تکون میخوره با اون طلا یعنی مرا زیبا کرده با اون لباس و با اون طلا و زیورالات قشنگ که براش خوشگل میشم شوهرم یعنی زیبایی رو دوست داره و براشم هم همسرش مهمه برای من گوشواره خریده که این گوشواره تو گوشم تکم بخوره و ملئا من شحم عضدي جانمم پر از گوش کرده خصوصا بازوهام هام چاقم کرده کرم داره تو خرج خونه و منزلش جانم پر از چربی شده از اون چربی حیوان از بس که حیون سرزده برام اکرامم کرده با غذا چاق شدم یعنی و به فبجحت الی نفسی فبجحت ای فرحنی یعنی من رو شاد کرده در دنیا را برام باز کرده مرا در خوشی و نعمت گذاشته هیچ کم و کاسی در حق من نداشته فبجحن. فبجحت الی نفسی یعنی اینقدر مرا در خوشی گذاشته که اصلا من غمی و اندوهی دیگه نچشیدم و ندیدم هیچ بدی انگار ندید این زن از و وجدنی في اهل غنیمتن به شقن یعنی من زمانی که تو خونه پدر من بودم خونه ما هم چند چندانه بوز گوسفندی توش نبود یعنی ما هم فقیر بودیم چیزی هم نداشتیم چون بعضی از زنا هستن میگن که ها پدرم فلان بود پدرم این کار میکرد. مادرم اینطوری بود برادرم فلان بود همیشه تو سر شوهر میزنن. انگار که شوهر شب و روز داره درو کوتکش میزنه. اصلا هیچ نعمتی از اون شوهر به زبان نمیارن ولی خب این زن داره یاد میکنه. میگه از خانواده هم بیشتر اکرامم کرده و شخصی که تلاش میکنه، زحمت میکشه برای خانواده‌ش و همسرش ف فی اهل صیلن ما خانواده بودیم که بزرگ گسران داشتیم ولی الان به من اسب و اینا تو اینا گذاشته تو ناز و نعمت یعنی تو خانواده گذاشته که اسب دارن خانواده ما بزرگ گوسران داشتن الان این شخص اسب و حیون و شطور و همه چیز داره نه که فقط اسب و عقید یعنی شطور داره اون شوتانی که بزرگان حم میکنن بر دوششون و برای قافله ها استفاده میشه از این ور و اونور آزوکو ببرن بیارن کلی اسب کلی شتر داره وداعس غیر از اون باغ و بستانی که داره که میکاره برای خودش از گندم از جو و منقن غیر از اون خدم و کارگری که براش تنقیه بکنن و یعنی اون کشت را براش غربال بکنن و بعد بیان ازش آرد و غیر بسازن و نون براش بپزن و الی آخر کلی خدم داره فعنده اکول و فلا و قبح بیشه جایگاه داشتم منزلت داشتم هیچ حرف بدی به من نمیزد اکرام میکرد هر حرفی هم بهش میزدم میگه تحملم میکرد و ارقدو فعتصبح یعنی من شب میخوابم صبحم که بیدار میشدم با روی خوش بیدار میشد یعنی همون ابتدا خلقی از خودش نشون نمیداد بلکه همیشه خوش رفتار و خوش خلق بود با من و اشرب و فتقم مح یعنی هر چیزی هم بود هم میخوردم هم مینوشیدم نمیگفت حالا تو کم کردی تو خوردی حالا چیزی تو خونه نیست تمام شده میگه تا جایی که می دونستم تو خونه میخوردم و مینوشیدم. خب الان بس به شوهرش از کرمش از رفتارش از تحملش از صبرش از شجاعتش مهمون نوازیش تمام شد. اما ام مابزر مادر این ابوزر کیه؟ فما اما ابی زرع میدونید مادرش کیه؟ عکوم رداح رداحون عکوم بحث رخت و فرش و ایناس خصوصا برای مهمون ها میگه خونش اینقدر بزرگ این زن که کلی متاع گذاشته از اون رخت خواب و غیر برای مهموناش که شب بیام پیشش بخوابه یعنی یعنی خیلی این زن اهل يعني مادر ابو زرع خیلی اهل مهمان نوازی بود دیگه چه برسه به پسرش؟ حتی تعریف خانوادش هم میگنه معمولا وقتی که زن و مردی از هم که جدا میشن اولین توپی که پرت میکنه اون زنه که طلاقش میگیره طرف مادر شوهره تا جایی که میتونه هر چی دروغ و هر چی شوتو لگد به مادر شوهره میزنه و بعدم خواهر شوهره حالا بعد آخر شوهره اول انتقامشو از مادر شوهرش میگیره بعد از خواهر شوهرش و کم میشه اون زنی که اون از اون مادر شوهر یا خواهر شوهر به خوبی یاد میکنه ولی حالا اینجا ببینید شما این زن که رسول الله صلی الله علیه و آله میگه من برات مثلا ابوذرم این زن نگاه کنی چطور به عایشه مثلا ام ذر هم مثال امو همسر این زن میگه نگاه کن خب چطور داره مطبخ شوهرش یه طرف مطبخ مادرش شوهرش هم داره میکنه و بی توها فساح خونه بزرگی داره برای مهمونهاش یعنی اگر اون نهمی خیمه بزرگی داشت برای ها این خونه گذاشته برای مهمونا نه که خیمه زده این خونهش وسیع خونه ساخته برای اینکه مهمون براش بیاد و کلی هم براش رو فرش شیده که بیان بخوابن قشنگ رخت خواب برایی که اونجا بیان پیشش بیشینن و بخورن و راحت باشن و اما پسر ابو ابن عبی زر میدونی پسرش کیه؟ فما ابن عبی زر بچشکی مضجعوه که مسلی شطبتین و ذراع زراعو الجفرتین پسر ابو یک پسر بینازی داره جاش مثل شاخ و برگ نخل یعنی یه جای کمی براشم کافیه تون خونه جاش انداخته بشه میخوابه هیچ وقت گلایه هم نداره و با کمترین چیز رازی میشه و تشبع و ذراع و جفرا منظور ماده گسفنده گوشتش کمه منظور که با کمترین چیز این راضی میشه این پسره اینی پسره کم توقعی داره امروز مثلا خب بچه های خود آدم میبینه دیگه از یه طرف کارت تو برداشته جیبی تو خالی کرده سیرم نمیشه اینم میخواد اونم میخواد بزرگترم که میشه پاش به دویرسان میرسیده موتور میخواد دویرسانش شد ماشین میخواد انگار که شدره بانکه این زن از حسن تربیت؟ از حسن تربیت بچه ابوذر میگه این بچه اینقدر متواضع اصلا پرتوقع نیست کم توقع این از حس تربیتش داره میگه یعنی اما دخترش بنت ابي ذر فما بنت ابي ذر دختر ابوذر اگه بهتون بگم اون کیه اون دخترش طوع و طوع امها دختر ابوذر هم حرف مادرشو گوش میده خوش اخراق و خوش رفتار با مادرش چون بیشتر دخترای امروزی تو خونه با مادرشون انگاه هبو هستن به هسته بکوب تو چرا کردی تو چرا نکردی تو نمیفهمی به مادرش میگه اونم مادره به این دختر میگه دختر فقط در فکر فرار از اون خونه و منزله که از دست مادرش فرار رو بکنه ولی این مادر این اموزار از دخترش شنین یاد میکنه حرف گوش کن دختر مؤدب چون پدرش پدرش معدبه که کین دختر مؤدب، پسرش مؤدب، مادرش مؤدب. هم حرف گوش‌گنی داره از مادر هم نسبت به پدرش توع و ابیها و توع امها. ملء کسائها یعنی این دختر از بس که اون پدره بهش رسیده تو لباسش جا گرفته، یعنی چاخ شده. یعنی لباسش به تنش اومده، نه اینکه لاغر مردنی باشه که لباسش براش گشاد بشه، نه. منعمه، در ناز و بزرگ شده، پدر بهش داده. بون کرمش و غیض و جارتی ها همه همان بیش حسودیشون میشه از خوشی که درش میبینن از اون آثار نعمت که درش میبینن همه نسبت بهش حسادت میورزن که چه پدر و مادر خوبی داره چه خانواده خوبی داره جاریه ابی زره حالا خدمش اون کنیزا اون خدمتگزارا از اون زنایی که تو خونهشه فما جاریه ابی زره میدونید اون دخترایی که تو خونش کار میکنن کیان لا تبث حديثنا قپ اول خبرچینی نمیکنن این در و اوندر اخبار خونه رو بیرون نمیبرن نمامی و خبرچینی نمیکنن حرف را از خونه بیرون نمیبرن خسنی ایک از چیزهایی که امروز ما داریم متاسفانه خود شوهره و خود زنه خبرچینی میکنن یعنی خبر بین خودشون و شوهرشون اول کف دست مادرشون میذارن کف دست خواهرشون میذارن خب چرا سر خونه تو رفتی بردی بیرون؟ خودت داری خونه خودت خراب میکنه فکر می‌کنی مادرت میاد میای بدگوی شوهرت میکنه، گل به سرت می‌زنه نه بنزی رو زندگیت میپاشه رون رو آتش زندگیت رون اون شعله فتیله که میشد راحت خاموشش کرد مادرت میاد بنزروش میپاشه این از حسن زندگیشون از خوبی زندگیشون میگه مادر شوهر یه طرف پسرش یه طرف دخترش یه طرف خدمشون هم یه طرف خبر را از خونه بیرون نمیبرن ولا تنقث ميرتنا تنقيفه دنبال هم نیست که مثلا بگرده ما پول کجا قایم کردیم کجا چی داریم چی نداریم نه دزدی میکنه و نه هم دنبال اینه که چیزی برداره بدون خبر ولتم لؤ بیتنا تعشیشه و نه هم این که خونه رو رها بکنه پاک نکنه تمیز نکنه میکمه رو بشه به قول امروزی کار نکنه نه کار میکنه تمیز میکنه نمیذاره خار و خاشاک تو خونه جمع بشه یا کسیفی جمع بشه نه تمیزم هست قالت قلا زنه میگی حالا انتهای داریم نزدیک میشیم قالت خرج ابو زرع والاوطاب تمخض روزی ابو زرع از خونه میره بیرون حالا از خوشی های زندگیش همه چیز گفت یک گلايه هم ندیدید از این زن روزی میگه ابو زرع رفت بیرون روزی از روزها روزی که حیوانا همه چاق شده بودن و همه اون ها پر از شیر شده بودن از اون گاوش شترش گوسفندش از اون حتی اون زنایی که بچه دار شده بودن یعنی ناز و نعمت زیاد شده بود حسن وقت ظاهرم وقت بهار خوردنیام زیاده میبوا هم همه سمر دادن حالا جالب خود این کنایه هایی که این زن از اون ادبش داره میگه یعنی نقل میکنه واقعه رو. میگه فلق یا امره تو مسیر داشت میرفت دید که زنی معها والدن دو تا بچه داره لا دوتات چنهم رایشه باهاشه های خودش کل فهدین مثل دوتو بلنگ یوس بلنگ یلابان دارن بازی میکنن من تحت خصرها کنار دوتو پهلوهاش دو تا بچه برمانتین با دو تا انار دارن بازی میکنن حالا بیشتر عرب اینجا از باب کنایه استفاده میکنن یعنی با سینه های مادرشون دارن بازی میکنن و این مرده هم چشمش میفته به سینه اون زنه گول جمال اون زن میخوره و اون شهوت مغزشو میپرونه طلاقنی اون نکا منم طلاق داد رفت زن را گرفت همه خوبی گفتم ولی خب اینجا هم پاش لغزید بنده خدا در عذرم بهش میده میگه که مقصرم وقت بهار و همه هم شیردار شده بودن این دوتا پلنگم زیر پهلوی های مادرشون از اون اناره هم داشتن می خوردن می نوشیدن با وجود میگه طلاقم دادا رفته هم یک زن دیگه هم گرفته و خودش هم یه شوهر دیگه گرفته با این وجود داره مت اون شوهر قبلیشو میکنه فنکحتو بعده رجلا و بازم شوهر بعدی هم بازم شوهر خوب بود یک شوهر شریفی سری یعنی شریفن یک شوهر شریفی با شخصیتی هم بازم گیر اومد بعد از اون بوزر شوهر خوبی هم گیر اومد رکب شریعه سریعه رکب شریعه یعنی سوار بود اون مرد هم با شهامت و مرد ای بود مردی اهل کار و شجاع بود و اخذ خطیه اهل شکار بود اون مرد با اون نیزه و رمحی که بدست داش داشت شهامت داشت اهل کار بود و اراح علیه نعما كثيرا از اون نعمت ها از اون کاری که هم میکرد مرد راحتی در ناز و نعمت گذاشته بود و اعطانی من کل رائحت زوجه و از هر نعمتی تا جایی که میتونست برام نه یکی یکی چند تا قرار داده بود یعنی خیلی زوج یعنی خیلی یعنی هیچی کیموکاسی در حق منم بازم این شوهره نداشته و قال کلی ام زرع یعنی هر چی دوست داری از غذا بخور و میری اهلکی هر چی از غذا میخوای به خانواده‌ت هم بده چون اونجا هم گفت که خانواده ای من چند تا گوزو گوسفند بیشتر نداشتن میگه این شوهر وقت هم اکرام من کرد هم اکرام خانواده‌ام فلو جمعت كل شيء اعطانيه ما بلغ اصغر انيه ابي ذر ان شوهر ولي هر چ من از اون چیزی که بهم داده جمع بکنم هر چیزی که داده به خودم و به خانواده‌ام یک کاسه ابوذر هم نمیشه یعنی بازم چی اون ابوذر هیچ کسی مثلش نیست در کرم در بخشش در نه خودش نه بچه‌هاش هیچ کسی مثل هم نمیشه وكان بمدحها وستايشاي كده داش نسبته ابو ذر قالت عائشه رضي الله عنها من هاشميه فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كابي زرع لام زر منن براي تو مثل ابو ذر بودم چنان چه براي زرع بود يعني تو براي من زرعي همونطور که این زن از شوهرش به عنوان یک باغبانه که خیر و خوبی میکاره تو هم برای من به عنوان یک زنم امو زرع بودی تو هم زنی بودی باغبان که خیر و خوبی می رسول الله صلی الله علیه و سلام مدحش میکنه هم عایشه میکنه هم میگه هم منم در حق تو خوب بودم و غیر از خوبی چیز دیگه از تو ای همسر ندیدم یعنی رسول الله علیه و داره میگه متقابله چون تو خوبی اون عایشه منم برای تو خوب بودم كنت که ابی زرع لؤم زر منم برای تو ابو زرع بودم مثل تویی که ام زرعی مثل تویی که باغبان خوبی یعنی محمد ام المؤمنین عایشه میگه و هم از خوبی هایی که داره نسبت به ام المؤمنین عایشه داره اینجا بیان میکنه و ام المؤمنین عایشه هم اقرار داره به لطف و مهربانی رسول الله صلی الله علیه و و شجاعتش و زحمتش و کرمش و بخششش تمام اون چیزهایی که گفت نه اون انتهای قصه بحث طلاق و بحث اون شوهر بعدی نه بحث اون معامله حسنی و خوبی که ابو زر با امو داشت و اینجا هم رسول الله صلی اللہ علیه یاد میکنه از اون حسن عشرتی که هم خودش هم اون عایشه باش داره این اقرار با نعمتی هست که الله جل و علیه به شخص عطا میکنه انسان باید همیشه شکوزار نعمت الله جل و علیه باشه و همیشه هم بیاد داشته باشیم اون حدیث رسول الله علیه و السلام که می فرماید روزی ابراهیم علیه السلام روزی ابراهیم علیه السلام میره به مکه اسماعیل هم علیه السلام ازدواج کرده بود میره در خونه رو میزنه و اون زنه ابراهیم علیه و السلام رو نمیشناسه چون خب ابراهیم در سرزمین شام بود و همسرش هاجر رو رها کرده بود در سرزمین مکه اسماعیل بزرگ شده ازدواج کرده میاد میگه شوهرت کجاست میگه رفته بیرون خب زندگی چطوره اون زن شروع میکنه به گلایه کردن ناشکری کردن هیچی نداریم هیچی نیست و اللا آخر گلایه میکنه ابراهیم عليه احسات وسلام از باب نصف فرزندش و اینکه این لایق این, این پیغمبر الهی نیست اسماعیل عليه حسسات وصلسلام میگه اگر شوهرت اومد بگو چارچوب در خونش رو عوض بکنه اسماعیل علیه حسسات و میاد به منزل بعد میگه که کسی اومده بود میگه بله مهمونی اومده بود این شکل شمایلش بود خب گفت چی بهت گفت، گفت،, گفت گفت که گفت که این چارچوب درت عوض گفته که چارشو درم که توی در خونه توی یعنی تو در خونه رو باز میکنی وقتی که من نیستم میرم میام اون شخص پدرم بوده گفته چارچوب در درم عوض کن منظورش این که تو رو عوض بکنم یعنی تو رو طلاق بدم تو هم طلاقی خاطر اون کفران نعمت خاطر اون ناشکری خاطر اون یاد بد از پیغمبر الله جل و علیه اسماعیل علیه السلام بعد زن دیگه میگیره اسماعیل علیه السلام زنی شک گذار سپاس گذار از شوهرش که و نام نیکی از شوهرش همیشه یاد میکرد راضی بود خانه بود ابراهیم علیه الصلاه و السلام بازم میاد در اون خونه و منزل و میزنه زنه اون رو نمیشناسه میگه زندگیتون چطوره از خوبی های شوهرش و زندگیش میگه بعد ابراهیم علیه الصلاه و السلام میگه که چار شو به درت اگر شوهرت اومد بگه نگاه داره خوبه برات یعنی اسماعیل هم که میاد از زنش میپرسی <تصفح> کسی اومده نه اومده؟ بعد میگه بله چنین شخصی اومده بود و چنین حرفی زده بود بعد میگه که این پدر باب بوده ابراهیم علیه الصلاه و گفته که تو رو دارم تو زن صالحی خوبی هستی خوبی به به خوب دیدن نعمتای الله بر خودمون هست چنانچه من گفتم سر خوشبختی در خوب دیدن الله چنانچه در قصه یوسف داریم که آخر قصه به پدرش میگه وقت احسن بی من السجن چقدر الله در حق من خوب بوده زمانی که از زندان آزادم کرد مرا اینجا گذاشت الله در حق من خوب بوده نگفت زندانم بد بود در چاه بد بود بیکس و کاریم در مصر و غربتم سخت بود هیچ کدوم از اون سختی ها را به پدرش نگفت از اون سختی های کشیده بود از اون تنهایی که کشیده بود از اون دوری که از خانوادهش کشیده بود هیچکدوم از اینا به زبان نیورد بلکه اونجا در آخر قصه گفت چقدر الله در حق من خوب بوده این شکر این سپاسه این حمد در مقابل نعمت های الله جل و علا که الله جل و علا میگه الا ان شکرتم لا نکن اگر شکر گذار شدید شکر نعمت الله رب جئو وردید الله بیشتر بهتون میده الله هم به ما و هم به فرزندانمون و هم به همسرانمون این زبان شاکر و این قناعت و این حسن رضایت از الله جلب علیا و نعمتاش رو عطا بکنه. سبحان الله بحمدک و سبحان الله بحمد و صل الله محمد و آل محمد